نمیشه رفته باشی گیس و گیس با خوهر خسفه کنیم آقا جون من خودم به حد کفایت چرمنده هستم دیگه سرزندشم نکنی آقا جون اینکه تو بوده بابا احتیاجی نمیست عزیزم انسان جای زرحت است. حالا مخواهی بری اصفاهی کنیم نه آقا جون من کاری مهمتری دارم توی این ماجره مقصر ازی خودشه خودشم باید درست خواهی کنه آدم باید در هر صورت حد تا دلو حفظ کنه نه به اتفاقات دوروبرش بی تفاوت باشه نه به فاکر هم چیچیسه آتیش بکنه پک یه اون زندگی آقا جون از الان بخوام رو کوچیک کنم من زیر درهمش مزه میکنه اون وقت یه عمر بعد فولدامو کوچیک کنم دختری به سن سال تو با تحصیلات تو با کمالات تو باید با وقار و با متانت باشه حق کسی هم مثلا کف دستش بذاری باید با وقار و متانت یادت باشه چشم آقا جون قربون خدا سپر خدا خدا گردار دخترم خدا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 Egy! Jelent! Jelmez konya fej! چرای اینجا باید شدید؟ چرای نه امدیم بالا؟ با چه داریم؟ با ماجره که پیش اومده میترسم هر آن بیان سراغ چرا بیان سراغ شما؟ این شما کشتش؟ نه پس چرا نگرانید؟ اگه اومدن سراغم، چی بگم؟ چی نگم؟ مختول الان تو سردخونه است شما برین یه سر بهش بزنیم قاطلا محلوم الان که من شما داریم اونجا با هم حرف نزنی مهمورای نزمی دارن از تختش سلاح و وسایلشون مو کشن بیرون شما بریم وسایلتون از, از اون اتاق فکستانی جمع کنی بریم اتاق رئیس نکنین بست بالا رو بگیر پیگیر قاتلش باش یه حالت هم راحت باشه از کجا معلوم که من رئیس بشم شب کسی دیگر رو بذارم رئیس اداره Nagyon jó, صحابت گلوله جون داده اینو همه شما چی میخواین از من بنده البته با طابق قانون گزارش مربوطه رو باید به مهمورید نظبیه منتقل کنم که تالا گویا موفق نشدن برای دیدن بیار به این مورد خاصیه منم باید مطالب باشم رئیس نظبیه هم در جریان هستن. شما بهتر فقط حواست به کار خودت باشه بله خطتم کاملا درست بود از کالیب را 7.92 میلیمتی و نوع گلوله میشه تشخیص داد با یه برنوی ویزد 24 طرفیم که به احتمال غریب به یقین زارب از دوربینم استفاده میکرده نازش هستش آقا شما فقط نوع اسلاحه و همچنین گلوله رو بنویس بقیه برسیار ما خودمون انجام میدیم زیستت من سوط رو راه مینونم. دو این قناری میفوشن. گرفتی. اس گرفته. قلم رنگ رفت تو چشمت. موفرف میدونی این قرونگو دشتن تو جیب. از نوک پات تا فرق سر الهت. هر اون نمیشه. یه فلسفه‌ای همه آمی ودمه اینش افسوده اینم. اندوزه افسوده نیست. آیان اون یاری. تمام تو آب کشیدی تیرنداز زبردستی بوده که برای نشون دادن قدرتش گلوره رو مابعین دو عبروی جناب عباله سنخان قرار داده گمون می از ارتفاع بالاتر تیرندازی شده شما بهتر بررسی کنین اون اطراف ساختمون دو طبقه ارتفاع بالا وجود داره یا نه شما همیشه اینقدر توضیح بازهات میدی؟ ای بابا بنده سالات هم رو گفتم گفتم شاید کمک حالتون باشه از صاحب هر میگردم. نمیترسی که. راحت بخواه. ترس تماسی من از برون نمونه. که خودم قاتلی تو از دار مجازات آویزون میکنه. İnaş! Haydi be. Getartıya binan. Beğa yalama doğru yar. Heyan yalama doğru. Beğa mi kain? Adamal şeyasin. Bu çayma, müke dar ki barkiye, bezene bokuşi darri. İnci sahab dare. Ne diyeyim, makiler yar fızsın. Herki mi kay baş? Lafat qemreside. Hoş sahha. İnaş? این هسته اما مهانی نیستی میشه کاری میکنم این کرده ما را چند نتلاف کنی پشمون میشید باید با دوم شیروازی میکنید یاد دیگر همتون رو برمیارم یاد دیگر همتون رو برمیارم Oysun da Enter دوباره بگیرش سلام چیزی شده؟ سلام جواب نمیده. قرار بود خسروخان شب بیاد اینجا. ازش خبره نیست، نگرانم. نگران نباش، حتما کاری براش پیش اومده. چیزی نیست. هرچی میشد خبر میداد. خسرو آدمی نیست که منو بی خبر بذاره. میخوای به این هتل سراغ ازش بگیریم؟ میشه؟ چرا نمیشه؟ سلام خاله سراش جانم خانوشت اینا رو از من بگیر یه قصه خیلی قشنگم برای حسام جان تعریف کن تا ما بریم و برگردیم چشم قصه مافیشونی خوب یه چقدر رنگ و باز شده بکنم زوده زود بعد در بیمارستان بیای بیروز زود میام باشه باشه بیم تو دو مافیشونی بهروز با بریم کار داریم پاشو کجا کار داریم؟ بیم کجا می دینم؟ که دور نیست هرچی کجا دارش توزده نمی کنم با اطلاق خوی همون می شما نمی شیم اه بیار شما مورا همین اطلاق خوی همین کردی خر تو خره. ما اینجا چه داریم گا دا بود ناچ. تا صبح نزده کاری میکنم این مرگ برام تا صبح قط قط کنی جوجه ها بلایی سرت میارم بلایی سرت میارم که حرف نقل مجالس شد منفهومه کاری میکنم که این مرغ کرچ برام تا صبح بین بزنی و بگی بد بده بد بد بده بد بد. حالا این هاو کنیز مهریه گرفته سیر تا پیازشو برام تعریف میکنی از آشنایی تا شب زفاف تا شلیک و قتل ولی بهتره که ما بریم اینجوری خیلی مزاهمه شما میشیم سلام نیست برگردین اینجا موندنتون هم کاری از پشت نمیباره. حالا شما امشب تشریف بیاید منزل و ما رو طرف راز کنید. فردا صبح که بیدار شدین تصمیم بگیرید. فکر خانم صحیحه. سلام نیست با این شرایط اینجا بمونید. برید منزلشون فردا صبح با ماشین میون دنبالشون. یا تا دو حالت دارید یا چهان می‌کنین یا سر راست میگید. خب چرا چهان کنی. حتماً با هم هم‌دست ببین وقتی خانوداستکیل کردن شما کلون گوری تا داشتی به همین سوی چراغ ما جلو خونه بودیم آقا آها بس یعنی از این شهود بی گناهی بود خب برو کردیم خوش آمان آقا یافرین دوباری دوباره پیش گست فردا صبح خانم و پسرشونو صحیح و سالم تحبیل میگیرم میفهمی که چی میگیرم البته قربان البته شما پسطور به برونست سلامت بس. این که اصلا حرف نمیزنه خیلی خون آقا پشتش گرمه کی پشتش گرمه تا فردا صبح ازش اعتراف گرفتی گرفتی اگه اعتراف نگیری خودشم گفت آقا گفت اگه بیام بیان پدر همه رو در میارم نکنه آقا یه کاری باشه از این کسی مورو بدبختر کنه اصلا کار من دارم آقا شما میگی این نتونی اعتراف بگی فرانست میکنم اینم که اینطوری تا ت جمعون فرد به دلتون را ندیم. آقای ما کل شن و جاشن یه عبروال پایین کنه عبر رو وکیل و قادر و منشی گرفته تا جاهل نوچه از سر و دیوار خودم فردا تو بای صحبت میکنم میگم در ردتش کیا میدین؟ شک ما رو ببین تو همین ازده تو هفر رو تیاب بزنی رو فرش کدوم از شعب چه خانوم بهرون تفا خودش آدم زیاد داره. لازم شما تو زحمت بیافتید. بله، بفرمایید، بفرمایید. خودت گفتی. آدمش فرقی برات نمیکنه. هر تای قیمت خودش داره. طرف دومش فاصله با پیجامیشا. و یه جو خودتو غمگور کن. آوا که از یا افتاد دیگه. به من یاد نده دفعه آخرت بشه درواره خونه و خونه وادم میبینم از خانه بخواره باش خوابیدن چقدر میخوای؟ آفتاب رو بوم نظمی نزده طرف دسته زیر زیرولشو خوب کشیدم پاشتش گرمه ندونستی به کجا بسیلو به من نگفتی آره؟ بر بند و دروند یا سراخی پیدا کنم و بخزم تو پیدا می و می که چند هم بیرون من پیدا شم تو هم پیدا می دی نمیتونی یه بیشتر نداری باید سرکی سر شل کنی خیلی هم شل کنی چقدر بخوای شما هم به چشمت نمیاد زیر و سرکه میدشونن تو دلم ترسم اینه که همه کس داغونای اقده ای سرش بیارم اینا چه خورده ورده ای با خسرو خان دارم دستت تو کار خیر با و مردم کار کنه خیلی ها فکری میشن که قدش کنن خسرو خان پوله بی حساب کتاب در نهی ورده سیبیله این آخای اینو چرم کنه خروخوان آب رو داره اهل بده بسونه اما زیرو رو کشیدن و مال مردم خوردن بلد نیست. آدم اسم داشته باشه و توی مردم آب رو خریده باشه. یغلینم بدخواه خیلی داره. خوروخوان پای هر دل دوستی رو از روستا بریده. حکمن حالا ریش افتاده دستشون رو میخوان تلافی کنن. پس وقاللو مردم دوسته. نکنه این درد سر قال مقال طول پیدا کنه یه باره یه حادثه یه تلخی پیش بیاره که دیگه نشی حرفات میگه دلت آشوبتر از دل منه حرفای نتعمه زیادی گفتن دارم. اما میترسم داغ نگفتنش به دلم بمونه خدا از عمر من کم کنه بذاره رو عمر داداش خسرم یه ده هر روز سر نمازشون اسمشون میارم. این همه دوها پشتش باشه از هفتاد تا بلا در امونه اگر برگرده مفصل حرف دارم باش دلناگرون نباش خانم ست تا از این بدتر سرداداش خسرم اومد و جون سالم به برد. موارف و توجه محسن به به سفره شمیمی و کمال خوریت در کشور و انجام بسکرد و اینکه آرامش و رفاه در زندگی مردم قدر میشود شباید بزرگی ملت ایران از امال دولتی خاصتر به سرمشق و شرافت اخلاق و شرافت و باشد دربه چند تا مردم پندورش کرد که دانا و و سفید شده. حالش حال عمر. و دقت نظر چرا لرزه چندی متفتاده؟ نم پس ندادن. و با دندنشو کشیدم بیرون لب از لب عین کرد. این سخرمیمونه. گنده تر از ایناش با دو تا برام تو صبح و حتا خوندن خیلی سفته نمیچرخه لامو رفت. هر حرکی ریگه بود به ست غلطه کرده و نکرده یه هفت باشش اعتراف میشه خیلی سفته نازد سفت شاید کاری نکرده بهتر از من میدونی که نکرده آش زودتر اعتراف. اینایی که ایش کدوم ترس نداره اماد برای چی باددی؟ اگه خطتون میشونی که راه و بیره برای میکشه رست رست سکی و درست باشه و اون بیرون سری تو سر داشته باشه فردا اینجا محبشده اون وقتی که باز خر بیاری و محرکه ببری تا <تصفيق> اگه میخواستی با اراتی زر نره لاتی اینجوری وابدی خب میرفتیم مطرب میشونی اینجا آمدن واسه چی بود؟ یه سلاوتی داره ک ق شد دستت قلم زن بیا همچون سرنوشتی رو پیش می ماندشته اون دسته اون از آتیش دوره و نمیدونین تو بازی بزرگ میشه خبره لنتی همچین نگاه پرغزی به چشمام میاززه که اون کار میخواد مغزمون به هم بریزه بعد بله سرت خب ورده مغرور نیمدی نه؟ یه آدم های آدم های شما گوزفن دروس پزم یعنی هرچی بشه آخرش سرشونو میبوره فردا جلو همین نزمیه باید تقاس پس بدی. نه نبم من, من. خود عربابتون یه می‌کردم تو رنجوندن دیگران یاد طولایی داری فکر نمیکردم خود دهر رنجیدن باشی نمیخواد چیزی بگی؟ راه درستی رو پیش گرفتی چیزی شده؟ نمیدونی؟ شنیدم ندونم از چی ناراحتی این آدم مال این حرفانیست قدرش به این چیزها نمیرسه کار توه کار منه؟ مرمانو کار منه؟ من یه هم چه آدمیم؟ تو چه شان میگاکم به کو خارم نه؟ اون آدم توی شک کسی رو نداره. داری واسش دریه میکنی؟ بی گناهه. کی من خیالت اینقدر خوب بشناسیش؟ این همه سال نون و نمک ما رو خوردی ما رو نشوختی. اون وقتی آدم گور رو نمیگیره مهمونو دلت براش نسوزه اینقدر. آش دوختم. آدم گذاشتم پیدیرشه. دینم ازش خرابتر از این حرفا. ارمانو من آدم میام میام خون از اون گریه التماس کنم که بی خیال این یارو بشی. کردم چون دیدم بوی مرد میده دیدم شایع از روی نقطه در دیوار خونه‌تون هنوزم همینا میگیره من مطمئنم اون بوی ازت میخوام بر یه کاری بکنم اجرت تو دلم بیرون کردم مهربون همون وقت تو چشام نگاه کردی و گفتی داری بهش فکر میکنی گذاشتم ات ولی باشه هر کاری دستم بر بیاد برات میکنم یعنی واسه دل خودم میکنم که تا قد ندارو نگاه تو عبری ببینم کاری از دستت بر میاد. قول نمیدم اگه بی باشه شاید بشه کاری او کرد اگه اگه قاتل باشه بایدی دارم مطمئنم بی یه اقاری و استولا خان ریس میذارم امی زرم بری برینیم چگاه میتونیم باید گروب یک Valóban. Valóban. Jó, hogy gyerünk a gyerek, hónapjai, és nem فرصد در لامو رو بد دره باز کرده نکرده هنوز چش نگردونده بودم ببینم کی و چی میخواد؟ که زد خواب و دو صورتم زمین و زمان جلو چشمم سیاه شد پن شدم اینجا خواستم ولنشم دو تا دیگه بیا پیافاشم دیدی؟ نه نه دیدم از خوش رفتم همینجا افتاده بودم ازم خون میره. خدا ازش نگذره من سایه ازرایلو چهل بار حالا دیدم و هم اردم صد تا جون دارم چایی داری بخوریم بچه که بودم زن با چند بار بریم خاکر الماس خورم و ای هم ارده. دید نمیرم دیگه نو اومد شد خدا بزرگم کرد گفت تو تو همه اون رو کفن نکنی هر با اون رو سق نزهی نمیری راست میگو، من نهی میرم الان اون بند خدا مرده چایب که نه رنگ داره نه جون بخیر اگه یافه شدیدی یا نه تو توالا پیش از اون این سگ سوزن خوده پا شدم پا میکوبم زن باز ایکی تقمون نیم برد میکنم باز که سپ در بند درم. اون یکی نیروه خاگی نویلش کشیده پس درد نکنه ها من بدم بدم اینه چای دارچین دوره یاد چای میرزم استکان جمع میکنم چرا؟ چون مهبان خانم خودش کم بود مهمون دربت کرده حسن حواس هست چی داری میگی؟ بله حواسم هست خیلی حواس هم هست حالی یارو چه توحبه نتنسیه که همه رو از قبل خودش کرده حالی یکش میلنگه که گرفتم بردنش این همه بی خود و بی جهت به مردم بهتون نزن شما فیتله کردی تو گوشت نمیشتن به مردم چی میگن بخوایی حرفا مثل تقس بیافتد دهن مردم روخ در این سرکه تو محل میگن این بچه مهبانوه که تو پرنگ پس میداخته نباید این همه به پرفای مش بی لیچانگوی بی سرفای زربت تو محل بذاری. من در خودنده کسی رو که به مانون کراارت کنه خرد می کنمم. سرعید میجان شما با استراحت را خسته شدیم. بیا بریم دخترم روزی پ۶ تا لییک ها بار من نکنه. روز شب نمیشه. خاک بر سریه خاک بث تاید که اینه کبیر خشک آبه خاک بررست. شیش ماه به دنیا اومدیه ها جی وایست داره. ماجره داده <تصفيق> <تصفيق> یه بایه کار هست که چهار تا چرخش اروم رد شد سه چهار تو سخون هم ولی زنده موندم از این یک کارتا زیاده وسط بار رفتم نزنی گفتم من استخدام کنیم من به دردتون میخوام برم خندیده حالا ببینم افتادیم به دست فون منظورم اینه که حاجت کاسه چینی و کاسه گلی افتاد کارتون گیره منه گفتیم ما من کدوم نزمیه این خب میتونین یه دست خطی چیزی بدین که منم استخدام کنم میتونم وایسم و سه‌پرا برای اعلی حضرت بشم قیافاشو دیدی یا نه نه ولی یه چیزیشو دیدم یه دونه از این چیزا بسته بود رو این چشمش یه اتون از میام میگی؟ توسیه هم میکنیم استخدام کی بهتر از تو شمع مهم. پولیسی هم داری؟ مهم. مهم. این همه بزارو بیار تصورشو نداشتم حسابی ما رو شرمنده میکنه اصلا دلم نمیخواست باب اول عاشنایمون اینجوری باشه تو شرط چه افتاده؟ خسرو خان رئیس اداره انحصارو کشته درسته؟ برای حرف مردم یه گوشتو در کن یه گوشتو دروازه. حرف مردم باد هواست به حیبت و بجناتشون میامد آدم به صفت و سختی و جنبال دیگه نه اینقدر آخ قندون یادم رفت خیلی باعث زحمتتون شدیم. نه شما مهمون ما این. ما باید بریم. پاشو پسرم یه مشتری دارم نظمیه چیه؟ میخوان با صحبت کنم بلکه راهی چاره جلوپامون بده. نه نه اجلتا لازم نیست شما کاری بکنید. نادر هست. خودش انجام میده. میگفتین نادر خانم میومنه. اصرارشون کردم آقا جون. قبول نکرد مخیشی رفت نکردی پیشگاهی دست دیزی چیزی هست حالت کنیم بیا با سفره پربیس خوان درستر از این حرف باست مرا ببین کیه به من چه خودش به درما کنه نوگه خونی خیلی مزاحمتون شدیم یعنی شما از اینجا میدین دلخوش دخفه یه منظر جدیز میخرید اختیار دارین شما قدمتون شادی وقت مودانه سوم وایسه سرعت سر منزل جدید ما تشریف بیاری. مزلی نزدیک دور نیست. یه لحظه جدید ما نشست. نه جنبه منزل جدیدی خواهد بود. داشت پامد پیل پیل. نیکوش کو، دنبالی سعی زاک با اتوموبیله. یه قدمه خیلی ممنونم. خودن نگهدار بفرمای خانم. خونه حاضره فقط یه سری کودریز نیاز داره. یه آشپزی که پس شبانه میشه. یه چیله فقط از شب بد مهلت میدم که خود رو بیاری بیرون. یه وقتی دیگه خودم پشادم رفتم دنبالش نیازی نیست بفرمایید حالا. این قبل امور. اوت به حساس زنانه شما سازگار نیست. حسما میام خدمت میتونم. اگر چیزی لازم داشتیم همینجا همه چی هست. میتونیم از اینجا برویم. بله بله هر چی که لازم بود بفرمایید مهاجم ایفادی. خیلی ممنونم. چه می دونیم از این زنی؟ دوباره هستم بده برمه ندید بدیدهای چهشی نقل خیلی خوش اومدید به سلامتید خوش اومدید خیلی بریدی بر که بر نگردید ظرفه که خوری بردا بیار چیه دختر تو دلت کل جوش بار گذاشتن اخ فکر میکنین ماجرات دختی به اختلافت با این مهرات خوان داره؟ گمون نمی مهرات قول داده با رئیس نظمی حرف بزنه. <تصفيق> نه مهرات آدم پلیدی نیست بگه کمک میکنم حتما کمک میکنم نه <تصفيق> <تصفيق> دخترم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Ha a polc ilyen veled, hogy mondjam, hogy. Hogy? این قاتلی است که می‌خواد نماز بخونه. تیموم می‌کنه. وراپیار. با آدم‌ها نمی‌شناسه. واسه موبادر از بدتر از بدینه که گوزیدا خطر از آش بشه. این جسد سیرین عقلم خدای نکرده باشه ما که خوزومی نداره. او فقط نوکر بوسه فرمونه. Az like to speed that night Köszönöm ettől. Tébe. Nem értem. Én magam tettőhíz vagy falamos nem kell. جوابش رو من چطوره؟ خوبه. خدمتتون بفرمایید که باید محافظینشون رو زیاد کنن. امثال این حرم لغمه خیلی زیاد شدن. مطمئن این کار خودش دیگه. شواهد و مدارک که اینو میگه ولی هنوز مغر نیماده مغر میاد شما بلد این چطوری مقرش بیاری؟ <تصفيق> نفر قابا سپردم از بار جدید پارچهی که برام رسیده چند عدد بفرستن منزلتون اگر رنگ و جنسش با میلتون نبود چیز دیگه ای اختیار داریدو قابا بند نوازی میفرمید Hesem kell, amí rá! páncéló در زمانه می روی حال که دوستانه من بخر تو شو و